نردبان جاودان وصل مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت موضوع سخنرانی زیارت آرفانه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی صل سیدنا و نبینا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارضي قال الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام ياكم ما من حرکت الا وان تفيها محتاج الى معرفه میدانید که کمیل از شاگردان خصوصی و از اصحاب سر امیرالمومنین بودن اصحاب سر کسانی بودند که اسرار مگورا را امامان با آنها در میان میگذاشتند بقیه یاران و اطرافیان ظرفیت شنیدن آن مطالب را نداشتند کمیل یکی از آنهاست امیرالمؤمنین به چونین شخصی می‌فرمایند یا کمیل ما من حرکته هیچ حرکتی اقدامی عملی فعلی کاری نیست الا مگر آنکه فیها در آن حرکت در آن عمل انت توی کمی محتاج الی معرفه نیازمند به شناخت و معرفت هستی لذا در فرهنگ دینی به ویژه ما شیعیان ارزش یک عمل به جنبه معرفت و به شناختی آن عمل است ممکن دو انسان یک کار یکسانی را مثلا سرکعت نماز مغرب را از جهات اقامه صلات دقت در قرائت به جا آوردن ارکان و واجبات و توجه در مقدمات کاملا یکسان باشد ولی یکی از اونها با معرفتی در سطح برتر به این عمل بنگرد دیگری در اون حد از معرفت نباشد امام صادق علیه السلام فرمودن دو از نماز یک انسان با معرفت به اندازه هزار رکعت نماز یک انسانی که اون معرفت را نداره ارزش داره پس ارزش یک عمل به کمیت اون عمل نیست به کیفیت عمله کیفیت عمل هم به معرفتی است که پشتوانه اون عمل است یکی از این اعمال عبادی ما که از مستحبات بسیار معکده است زیارت معصومین علیهم السلام این عملی که شما عزیزان ان شاء الله توفیقش رو یافته اید که مشرف شوید حالا با پشتوانه معرفتی دینی به این عمل به عنوان زیارت امام رضا علیه السلام نگاه کنیم چند شکل میشه نگاه کرد با چه تفکر و بینشی میشه به زیارت رفت یک خستم نیاز به استراحت دارم چند روزی فرصتی برای من پیدا شده و میخواهم به یک سفری بروم این سفر رو زیارت امام رضا علیه السلام قرار دادم آیا بد است؟ نه ولی ایدئال است قطعا خیر آیا نمیتوان با یک پشتوانه فکری برتر از این به زیارت امام رضا علیه السلام رفت؟ خب انگیزه دیگر با شناختی دیگر زیارت امام رضا علیه السلام سباب زیادی دارد و من به زیارت می روم که سباب کسب کنم مثل دسته اول به زیارت نمی روم که رفع خستگی کنم استراحتی برای من شده باشد به زیارت می روم که ثواب کسب کنم به فرموده امیر المؤمنین علیه السلام در هر عبادتی که انسان به قصد ثواب اون عبادت رو به بیاورد، این عبادت عبادت تاجر پیشگان است نوعی معامله با خداست عبادت احرار نیست مگر مولانا فرمودن عبادت کنندگان سدستن کسانی که خدا را به تمع بهشت عبادت میکنن عبادت آنان عبادت تاجر پیشگان است کسانی که خدا را از ترس جهنم میپرستن عبادت اونها عبادت بردگان است کسانی که خدا را لایق پرستش دیدن و از باب انجام وظیفه بندگی بندگی می و این عبادت احرار است اگر عبادت خدا برای سباب و بهشت باشد این نوعی معامله است خلاف مروت بود کولیا تمنا کنن از خدا جز خدا خدا یا عابد از تو هور می خواهد. قصورش می به جنت می از درت یارب شعورش می اگر عبادت خدا به تمه بهشت یا کسب سباب عبادت هست ولی عبادت احرار نیست عالیترین حد بندگی نیست پس زیارت امام رزا علیه السلام هم اگر به قصد کسب سباب باشد گرچه خوب است ولی ایدعال نیست میشه از این بالاتر باشه بالاتر از این چه میتونه باشه ما وقتی به زیارت امام رضا می رویم چه فکری از این رفتن داریم با یه مقدمه ارز کنم کمال هر موجود به بروز استعدادهای اون موجود است اگر شما یک مشت گندم داشته باشید کمال این گندم چیست؟ در اختیار مهندس کشاورزی یا کشاورزانی قرار بگیرد که بلد باشند و بتوانند این استعدادش رو بروز بدن این کار رو میگن تربیت گیاه اون مهندس یا کشاورز میشه مربی حالا اگر این کار رو به جای بذر گندم در رابطه با انسان در نظر بگیرید استعدادهایی که در ظرف وجود انسان قرار گرفته کسانی که بدانم و بتوانم این استعدادها را بشناسند و بروز بدن میشن مربی انسان اون کسی که استعداد انسان را بهتر میشناسه و بهتر پرورش میده میشه بهترین مربی شما در تربیت استعداد علمی سراغ اون مربیانی میروید که بهتر بتوانند استعداد علمی شما را بروز بدن حالا در تربیت استعداد انسانی شخصیت بشری آدم شدن یک انسان کسانی که این استعدادها را بشناسند و بهتر بتوانند این استعداد انسانی و آدمیت بشر رو در وجود انسان پرورش بدن کسانی که علاقمند به انسانیت و تعالی بشری و رشد استعداد انسانی در انسان است برای این دسته از مربیان و این گونه تربیت و کلاس پرورش چه ارزشی قائله؟ حالا اینو در یه سطح بالاتر ببریم شما هرچه مربی در این عالم طبق روال تربیت ما ها و توان افراد ما بشر سرآمدی آیا از این که عرض می میتونه بالاتر باشه استعداد را بهتر بشناسد استعداد را بهتر پرورش بدهد اما توان ایجاد استعداد می تواند داشته باشد نه یعنی اگر شما یه شاگردی که استعداد ریاضی خوبی داره ولی استادی که نمیتواند استعداد ریاضی رو بروز بده میگه مربی خوبی نیست ولی استاد ریاضی که خوب بلد استعداد ریاضی رو بروز بده میگی میگه خوبی است. اما آیا یک موجودی که اصلا استعداد ریاضی نداره به این استاد بگیم میتوانی در ظرف وجودش ایجاد استعداد کنی میگه این دیگه در توان من است اما کسانی که از طرف خدا معموریتی دارند که قدرتی به نام ولایت تکبینی پیدا کردهاند؟ نه تنها مربیان که استعداد ما را بهتر میشناسند، نه تنها مربیان که استعداد موجود در ما را که شناختن بهتر بروز میدهند، میتوانند در ما ایجاد استعداد کنند. یه همچون مربی اگه پیدا کردید. چه عرضشی براش قایل خواهید شد اون مربی که نه تنها استعدادهای شما را بشناسد و خوب پرورش بده بلکه در ظرف وجود شما تعدیر وجود ایجاد کنه اینکه که عرفا ناله میزنم، صاحب نفس پیدا کنیم نفس صاحب نفس به ما بخورد آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند یعنی چی؟ مثل وجود را کیمیا می نه یعنی مثل وجود را میشناسد و ظهور مثل وجود میدهد. مس وجود را تبدیل به کیمیا می این در مرحله اول خود خداست لذا رب العالمین است الحمد لله لله ربه حمد میگویم اون اللهی را که اگر الله اسم ذاته است در میان تمام اسما استفاتش به جنبه ربوبیتش انگوش میگذارم رب آلمین است رب آلمین است یعنی چی؟ یعنی هرچه مخلوق است ما سوالله که آفریده الله با ربوبیت الله تربیت الهی پیدا می کند. خب ربوبیت الله برای تربیت الهی چه نوع ربوبیتی است؟ میتواند موجود را دگرگون کند تحول وجودی ایجاد کند حالا جلوه این ربوبیت الله عالم مثل جلوه هدایت الله میشن حادیان الهی جلوه ولایت الهی اله میشه اولیای الهی جلوه ربوبیت الهی میشن مربیان الهی ما به زیاده امرضا می رویم اگر این بینش رو پیدا کنیم که به دیدن یک مربی الهی می رویم. اینجا دو تا نکتر کنار هم بگذارید یک آیا من که به زیارت امام رضا می روم به زیارت غرف امام رضا می روم یا به زیارت امامی می روم که در بینش دینی من حی است چرا در ازن دخول امام رضا می اشهد و تسمع تسمه و کلامی و تشهد و مقامی و ترد و جوابی اشهد و شهادت میدم؟ این شهادت با معرفت توامه یا لغلقه زبانه اگر لغلقه زبان است این زیارت زیارت نیست مثل خیلی کارهای دیگه ولی اگر باور است شهادت کدوم باور رو به زبان میاره که من شهادت میدم موقعیت مرا میفهمی میبینی سخن مرا میشنوی و جواب میدی بنده استاد عرفانی دوستام شب ولادت امام کاظم علیه السلام آمد بالاستر حرم امام رضا علیه السلام روبروی زری ایستاد با امام رضا شروع کرد سخن گفتن گفت ابن رسول الله شما میدونی من راست میگم باورم اینه شما زنده‌ای ولا تحسبن الذين قتلوا فی سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون اون تازه یک درجه از شهادته مقام شهادتی که قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو الملکتاب که فرصت نفت شرحش در این جلسه نیست مقام شاهد بودن که خدا در این آیه برای این بزرگواران قائل است اون مقام شهادت ولا لا تحسبندن قتلوا قتلو فی سبیل الله عنواتا فکر نکنید اینا مردم، اینا زندن، خب من عقیدم اینه که شما زنده اید دو، عقیدم اینه که شما به ازن الله خلیفت الله اید خلیفت الله یعنی چی؟ خلیفه یک موجود یعنی جانشین و موجود وقتی خدا تو قرآن می‌فرماد فرماد انی جائلون فلعرض خلیفه من میخوام روی زمین خلیفه قرار بدم یعنی جای خودم کسی رو در زمین قرار بدم که چه کنه؟ کاری را که خدا میخواهد در زمین صورت بگیرد به اذن الله خلیفت الله انجام بده پس باید کارش کار خدایی باشه کار خدایی نه خدا به اذن الله خلیفت الله در کار الله میکند این مرد خدا بالاسر حرم امام رضا با امام رضا این گونه سخن می گفت عقیده من اینه شما زنده اید عقیده من اینه شما خلیفه الله اید و عقیده من این است خلیفت خلیفه الله می تواند کار الهی به ازن الله بکنه شب ولادت بابات امام کازم ایدی میخوام تا ایدی ندی نمیرم به چشم دیدم از داخل زری سکه پرید اومد تو دست این مرد خدا همینجوری که ایستاده بود اینا باور میخواد اینا معرفت میخواد کسانی که در این وادی نیستن شما اگه ظاهر امام رضا نبودید من این حرفها رو با شما نمی‌زدم هر حرفی رو هر جا نمی‌شه زد هر سخنی رو با هر جمعی نمی‌شه گفت شما مطالب ریاضیات دوره دکترا رو تو کلاس راهنمایی بگید شما رو تخته میکنن چون اون نمیفهمه شما چی می‌گید مطالب بلند معرفت الله را مطالب عمیق معرفت خلیفت الله را برای جمعی که الله را نمیشناسند، خلیفت الله را نمیشناسند، ترک کردن، خیانت به الله و خلیفت الله است ولی اون کسی که به عشق امام رضا حرکت میکنه میگه با یک پشتوانه معرفتی میخوام برم برای او میشه این حرفو زد به قول مولوی مرد من در حسرت فهم درست اینکه که به قدر فهم توست او دست دراز میکنه میگه با تو زنده و با هم خلیفت اللهی و اگر خلیفت اللهی به ازن الله در ماسو الله کار انجام بدی و این چیزی نیست که بخوای به من ایدی بدی میگه چون معرفتت اینه مطابق معرفتت باید عمل میکنم مثال میزنم اگر یه استاد ریاضی تو دوره دکترا شاگرد رو در حد راهنمایی میپرسه جوابش رو در حد راهنمایی میده شاگرد رو در حد مافوق دکترا میپرسه توان داشته باشه مافوق دکترا بهش جواب میده زائر امام رضا با چه معرفتی با امام رضا حرف میزنه با توجه به اون معرفت امام رضا اون رو نگاه میکنه لذا چی میگه میگه من اگر دوست دارم آدم شوم اون مربی رو احتیاج دارم که بتواند یک استعدادهای موجود مرا بروز دهد دو حتی تغییر استعداد در دنیای وجود من بده در حالات مرحوم میرزای شیرازی نوشتن صاحب فتوای تحریم تنباکو اون مرد بزرگ میگه شیخ انصاری به قول مرحوم استاد متحری خاتمون مجتهدین شیخ انصاری مرد عجیبی بود وقتی آمد حوزه نجف درس شروع کرد مثل میرزای شیرازی که خودش از فهول علمای شیعه بود میگه پای درس شیخ انصاری نشستم احساس کردم سطحش از من بالاتره خیلی خوب متوجه نمیشم تلاش کردم خودام بکشم بالا یه هفته دو هفته مدتی گذشت احساس کردم نه سطح درس خیلی بالاتره و دلم می‌خواست که خودم رو به اون سطح بکشونم دیدم توانش انگار در من نیست ولی مایوس نشدم شب اومدم تو حرم امیرالمؤمنین رفتن پیش مربی از مربی کمک خواستن شب اومدم پیش تو حرم امیرالمؤمنین گفتم یا علی تو می‌دونی که من تا این عمر تا اینجا تلاشمو کردم تنبلی نکردم. زحمت کشیدم. یه وقت انسان کار نمیکنه تنبلی میکنه پر داره. یه وقت کارشو رو میکنه زحمت چه کشیده؟ من تلاشمو کردم ولی اون نتیجه ای که میخوام بگیرم به این نتیجه قانع نیستم لذا از شما کمک میخوام یه شب خواب دیدم. امیر این فرمود که میرزا گوش تو بیار جلو. من گوش بردم جلو. دهن مبارک آورد در گوش من. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم از خواب پریدم دیدم حالم منقلبه نزدیکی های صبح بود نماز شبم رو خوندم نماز صبح رو خوندم تعقیباتم تمام شد گفتم فرصت دارم یک کمی پیش مطالعه کنم کتابو باز کردم که امروز بناس درس داده بشه تا کتابو نگاه کردم دیدم مطلب میجوشه آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنند آیاک شود که گوشه چشمی به ما کنن تا یارک را خواهد و میلش به که باشد میگه احساس کردم نه عوض شدم مطلب دیگه داره میجوشه اومدم سر جلسه شیخ شروع کرد به درس یه رو درس نگفته بود یه اشتال کردم چنان اشکال من قوی بود که شیخ خیر خیره, خیره من رو نگاه کرد استاد از اشکال شاگرد میفهمه شاگرد در چه سطحیه؟ خیلی نگاه خاصی به من کرد جواب من داد یه رو به دیگه درس نداده بود اشکال دوم کردم شیخ بیشتر جذب من شد یه هفش ده روزی نگذش درس شد بیشتر اشکال من جواب شیخ یه روزی که درس تموم شد شیخ اومد ردشه از کنار من رد شد سرش آورد در گوش من گفت جناب میرزا خیلی شلوغ نکن. اون که در گوشتو بسم الله الرحمن الرحیم رو فرمود در گوش من تا ولزالینش رو هم خونده آنانی که مورد انایت خاص قرار می گیرند یعنی چی؟ ببینید عزیزان من شما استعداد فیزیک دارید استاد فیزیک ندارید استعداد فیزیک بروز نمیکنه استعداد فیزیک دارید استاد فیزیک خوب پیدا می کنید. استعداد فیزیکی تو هم پیدا میکنه حالا اگر استادی پیدا کنید هر چه استعداده در ظرف وجود شما ایجاد کنه اونو چجور باید قدرشو بدونید چقدر باید دنبالش بگردید اگر حافظ میگه دست از طلب ندارم تا کام دل برآید یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید این جان و جانان در بین شهر فانی حافظ اشاره به چه مسئله اشاره به آنانی که جلوه جانانم من بدن دارم تن جان دارم روح جانان جان جلوه از جانان است جانان یعنی معطي روح یسالون کن روح قل الروح من امر ربی شما چه کارا میتونه بکنه چون جان است جانان چه کارایی میتونه بکنه روح جانیست جلوه از جانان این همه آثار داره حالا جانان چه میکند آنانی که جلوه جانانن پس میرم زیارت یعنی باید میرم خب حالا اینجا دو سه نکته چون وقت به من گفتن محدوده من نمیتونم مبسوط حرف بزنم فشرده میخوام بگم حالا اگر با این دینش میگم مثل اینه که امروز به من بگم مثلا برای بنده که در این سنم با سن خودم مثال بزنم آقا بنده اومدم تو این وادی مثلا راجب انسان شدن، آدم شدن، تعالی بشریت، معضلات تفکر بشری، حل معضلات سعادت انسانی 40 سال پنجاه سال کلاس رفتم، استاد دیدم، کتاب خوندم، این دانشگاه رفتم، اون دانشگاه رفتم برام حل نشده گیرم. امروز به من بگن یه عالم ربانی اومده، اون طرف دانشگاه شریف تو خیابون آزادی یه جلسه گذاشته، اگه بری پیشش بشینی این مطلب رو برای تو حل میکنه برای من این که پنجاه سال برای حل این مشکل دویدم. این فرصت چقدر غنیمته؟ در صورتی که اونو حلال مشکل بشناسم به من میگن گفته ساعت سه نصف شب را میدم باشه سه نصف شب باشه حالا سه نصف شب میرم در خونه سه تا نکتر اینجا دقت کنید یک میدانم که او مرا میشناسد و میداند من بد کردم حالا میخوام زنگ بزنم از یک طرف دستم میلرزه. الان زنگ بزنم در رو باز کنه چشمش به من بیفته او که از همه صوبیده و وجود من آگاهه به من بگه تو دیگه چرا تو که دم از دین میزدی چرا این قرار کردی اینجا چه حالی به من دست میده دستم میدرس لذا ممکنه دستم رو بیارم پایی ایه حالت حالت دوم دستم میارم پایی یک کمی پشت در میشینم بعد میبینم که خب اگه از این در برم کجا برم؟ او میتونه حلال مشکلات من باشه گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر این دل کجا برم این مهر افت کنم لذا دوباره میگم نه این درگه ما درگه نومیدی نیست اینجا ما رو نامید نمی کنن در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را لذا جرأت پیدا می کنم زنگ میزنم حالا اگه در زدم در باز کردن به من بگم نه برو در میبندیم من چی میگم؟ اگر اون بینش باشه معرفت در عمل معرفت باشه چی میگم؟ باشه در و بس بسته نصف شبه بهتر بر میرم میخوابم ولی اگر اون معرفت باشه با مقدمه که عرض کردم من پنجاه سال دنبال حل این مشکلم گشتم یکی رو پیدا کنم حالا پیدا کردم؟ سه نصف شب وقت داده رفتم در خونه زنگ زدم در باز کرده میخواد ببنده چی میگم؟ میگم به خدا از اینجا تکن نمیخونم میشینم میخوای سیلی بزنی بزن میخوای پتکم بزنی بزن میخوای تنبیم بکنی بکن ولی منو از خودت نران تو دعای کمیل امیرالمومنین اینو به ما یاد دادن یا نه سبر تو علا نارک و کیفه اسفر و علا فراحک مناش این هست یا نیست؟ اگه میخوای منو تو دوزخ بندازی نقل به معنا بنداز ولی منو از خودت جدا نکم در دوزخم بیفکنو نام از گنه نبر پوتش به گرمی عرق انفعال نیست لذا وای میستم تا منو بپذیره حالا که پذیرفت میگم نیومدم چهره این آقا رو نگاه کنم آمدم از نفس این آقا بهرمند بشم اومدم تربیتم کنه حالا زیارت با یه تعبیر دیگه ارز کنم اگر الان برای من و شما که شیعیم به میزانی که معرفت امام داریم که به ما گفتن من ماته ولم یعرف امام زمانهی ماتمیتتن جاهلیه اگر کسی امامش را نشناسد مثل کسی است که به مرگ جاهلیت مرده به ای که من امام زمانم را بشناسم امشب بیان تو مسجد فرض بگیرید یکی به من بگه آقا فردا ساعت ده صبح از امام زمان برای شما یک ساعت وقت گرفتم شما امشب تا ده صبح فردا چه حالی دارید؟ حالا اگر به ما بگن شما فردا ده صبح تو حرم امام رضا میرید طبق بینش امام که هیومم میت نداره ولی ما وقتی گرفتار محسوساتیم چشم سرمون میبیند چشم دل نمیبینه لذا فرق میگذاریم چشم دل باز کن تا که جان بینیم وانچه است آن بینی. حالا با چشم دل و نگرش حق و معرفت کجا میرم؟ مشهد مقدس برای چی؟ محضر امام سلام. علیه السلام زیاد یعنی تو کلاس تربیت امام رزا مربی کیست خلیفت الله قدرت این مربی چیست ایجاد استعداد. مثل وجود رو از این رو, رو به اون رو میکنه به اذن الله آواه بر ماسب اللہ یه خاطره از یکی دیگه از اساتیدم نقل میکنم بحث و جمع میکنه یکی از بزرگان از اساتید ما شاید سی سال قبل بود یادمه اون موقع میفرمود که 50 سال قبل پیرمردی بود روحانی اهل علم بود مرد خدا بود میگفت من 50 سال قبل یه طلبه جوانی بودم رفتم مشهد مقدس اون موقع اطراف حرم مطهر این کیفیت نبود بازار منتهی می شد به سحن بندم یادم که بازار سرپوشیده داشت مثل مثلا سحن حضرت عبدالعزیم شما از بازار منتهی میشه تو سحن بازار منتهی می شد به سحن مسجد گوهرشاد و بین فلکه آب و سحن مسجد گوهرشاد یه خونه دو طبقه بود صاحبش روحانی بود این طبقه دوم رو خالی گذاشته بود زائرین روحانی که به مشهد میرفتن مجانی در اختیار اینا میگذاشت پولم نمیگره و منم یه طلبه جوانی بودم رفتم مشهد یه اتاق از طبقه دوم این ساختمون این آقا به من داد من دو سه روزی که اونجا بودم میرفتم حرم و برمیگشتم خودم احساس کردم زیارت باحالی نکردم همیشه نچسبید به دلم یه کمی دلگیر شدم یه روز تصمیم گرفتم قضا کم بخورم آداب مستحبی همه رو به جا بیارم با غسل زیارت و با مقدماتی که داره و از در خونم که را می سرم مندازم پایین و این مسیرم کتا بود با ذکر حرکت کنم وارد حرم که شدم بعد از مقدمات زیارت جامعه رو شروع کنم سرم هم من مندازم تو مفاتی که حواستم این بر برانور نره شاید یک حضور قلبی در این زیارت داشته باشم و همینجور که مشغول زیار یه طلبه ی تر از من که پیش من جامال مقدمات می خون این که از دور من دیده بود اومد جلو هاجابا سلام علیکم گفت تو ذهنم گذشت وای این حالا اومد موی دماغ ماشون زیارت هم بکنم ولی خب جواب سلام واجبه چیکونم همینجور که سرم تو مفاتی بود گفتم و علیکم السلام واججا کی اومدید چیکونم چند روزی هست ادامه دادم سلام و بالا هاجابا کجا سکونت دارید شما رو ببینیم و عصبانی شد کتاب بستم برو کنار دیگه به من زیارت هم میکنم. اون بنده خودم که آزرده شد دل شکسته شد یه نگاهی به من کرد منم حال هم حالم گرفته شد نه حال ادامه زیارت پیدا کردم این بند خودم دلش رو شکستم. بعد دیدم نشون آی زیارتی که ما تازه مقدمه چیده بودیم بیاین با حال انجام بدیم بدتر شد مفااطی رو بستم گفتم برمیگردم. برم مجددن خودمو با یک شرایطتی آماده کنم بتونم بیام حرم با برگشتم. پامو گذاشتم رو پله اول این ساختمون برداشتم بذارم رو پله دوم ساختونه از پایین من صدا زد آقای آسید خولان یکی از علمای اسم ببرم مشهور حالا نمیگم آقای آسید فلان گفتم بله آقا گفت امام رضا فرمودن نیای حرمان به یه تکانی خوردم چی آقا؟ گفت امام رضا فرمودن نیای حرم فهمیدم قضیه چیه چون کسی خبر از این قضیه نه از همون پله برگشت. برم این طلبه جوانو پیدا کنم رضایت ازش بگیرم گفت اون قدر گشتم این صبح بود تا نزدیک قروب توی مسافرخونه اطراف هرن طلبه جوانو پیدا کردم تا چشمان به افتاد به گریه افتادم گفت چرا گریه هم گفتم پدرم در آوردیم گفت چی شده قضیه رو تعریف کردم او هم به گریه افتاد گفت دلم خیلی شکست وقتی شما با عصبانیت من روندی استاد من بودی پیشا درس می‌خوندم توه نداشتم اینجوری با من برخورد کنی من با علاقه اومدم پیش استادم بگم حاج آقا کی اومدی کجایی چون تند شدی با من من دلم شکست همینجوری که دلم شکست چیزی هم نگفتم ولی حالا که امام رضا اینقدر توجه دارن و زائرشون دوست دارن که برای دل شکستن من به یک مرد خدا الهام میکنن که او متوجه بشه به شما بگه من رضایت دادم از شما گذشتم گفتم خب حالا که راضی شدی یه چای برام درست کن من صبح تا هیچی نخوردم تشنم یه چای بخورم برگردم و یه چای خوردم برگشتم اومدم گفتم برم امشب استراحت میکنم ببینم تا تکلیفم چه میشه اومدم پارو گذاشتم رو همون پله اون آقا از پایین صدا زد آقای عاصد فلان بله حضرت فرمودن حالا مانعی نداره میخوای بیای حرم بیا بله عزیزم عالم خبراییه همش اینبره پرده نیست اون پرده رو ببینید چشم دل باز کنید تا که جان بینید وان چه نادیدنیست آن بینید مشهد رو به دیدی سفر نگاه نکنید اماکن زیارتی به دیدی یک سفر تفریحی سرگرمی نگاه نکنید نمیگم اگه اون باشه حرامه نه حیف است به دید فرصتی پیش آمده است ها در کلاس درس تربیت نفس صاحب نفسی که مقام خلیفت اللهی دارد و لذا اونهایی که به مقاماتی رسیدن متوجه میشن ملا صدرا فیلسوف نابقه جهان تشیعه استعدادش حرف نداره کتابش بعد از چار سال مرد میخواد که بتونه بفهمه ولی میگه وقتی هفت سالی که در كهک قم بودن کهک غم فاصلش با غم الان شما با اتومبیل برید یه ساعتی تقریبا زمان میبره میگه هفت سال در کهک غم بودم هر وقت مشکل علمی در فهم یک مطلب برام پیش میومد از کهک غم قصد زیارت حضرت معصومه میکردم نوشته خودم الله می اومدم حرم حضرت معصومه زیارت میکردم درکت نماز می خوندم. متوسل به حضرت معصومه می شدم از ایشون کمک می مطلب به ذهنم می زد مشکل رو حل میکردم. حالا اگر یه آدم معمولی کم استعدادی این حرف بزنه ممکنه بعضیا بگن خواب اینا استعدادشو نداشتن ملا سعد راست. با اون آثاری که باقی گذاشته او چار سال قبل حرکت جوهری رو کشف میکنه. او چهات سر سال قبل اصالت وجود رو کشف میکنه و ها کذا وقت این انس... چرا؟ چون اونا میفهمن این معلما چه معلمایی هستند لذا فرصت را غنیمت شمردن و در محذر چون این بزرگ رفتن آدابی داره من موقعی که عزیزمون قرآن میخون حقیقتا دلم شکست دیدم دانشگاهه جو دانشجو اگر یک غریبه غیر مسلمان تو میان ما می اومد خجالت داشت برای که قرآن میگه ازاقوره القرآن هستم اوله و انس تو اون قد حرف میزدید که قرآن فهمیده نمیشد آیا اینجوری باید به قرآن گوش بدیم اینجوری باید زیارت بریم اینجوری باید نماز ببخشید من چون شما رو دوست دارم وزیفم به شما بگم آقا چرا قرآن میخونن نمیدین؟ مگه چقدر طول می‌کشه نمیتونیم پاشیم بریم بیرون از جلسه بیرون هم واسه دو تایی با هم حرف بزنیم ما هنوز ادب یک جلسه دینی رو نمیتونیم رعایت کنیم وقت تبعقو داریم امام رضا به ما عنایت کنه ببخشیدا میخوام دلاتونو بشکنم با دل شکسته برید پیش امام رضا بگید یا امام رضا میخوام عذرشم میخوام به ای باشم که اون نحوه ای که در محضر یک بزرگ کسی میخواد حاضر بشه با این پشتوانه شناختی حاضر بشم وقتی حاضر شدم بگیرم لذا یک معرفت بقیهش رو اسمی برم چون فرصت بحث ندارم به من گفتن وقت شما محدوده ببینید پس یک به فرموده امیر به کومیل یا کومیل ما من حرکتن الا و انتفیها محتاجون الى معرفت حرکتی نیست اقدامی نیست گام برداشتنی نیست مگر این که شما در اون معرفت در اون حرکت نیازمند به معرفتید خب زیارت مامرزا یک حرکته. معرفت این زیارت چه میشه؟ با این اشاره مجملی که کردم دو وقتی معرفت به اهمیت یک کار پیدا کردیم رعایت نحوه کار مطرح میشه بنده در حالت عادی مثلا دارم توی حیات منزلم را میرم خب تو حیات منزل کسی هم نیست من هم تنها دارم برای خودم قدم میزنم یه وقت در محظر معلمی که پنجه سال برای من خون دل خورده میخوام رابرم برم ادبی میخواد یه نزاکتی میخواد یه احترام بزرگتری میخواد یه وقت مادرمه پدرمه شما میدونی در اسلام ما حق نداریم دست کسی رو ببوسیم مگر چند مورد یکیش در مورد پدر و مادر ادب باشم دست ببوسم پاشو ببوسم حالا میخوام در محضر خلیفت الله برم میخوام تو حرم مامرزا برم چقدر این درده آدم تو حرم مامرزا میبینه داد میکشه حرکت میکنه میدوه چهار نفرم هول میده مخصوصا اونی که کاراتم بلده یه دست اینجوری یه دست اینجوری میدنه و بعد میگه دیدی همه رو پرت کردم رفتم زریع رو گرفتم این کیفیت محضر ای بر است. یا اگر دیدم شلوغ نمیتونم برم جلو با همون گردن کج با یک ادب خاص از دور باستم بگم یبنه رسول الله بعد منزل نبود در سفر روحانی برای شما از پشت زری یا از پشت دیوار فرقی نمی کن. من استادی داشتم خدایش بیاموز خدا رو که ما خدا را شکر ما اینا رو دیدی. در عمرش مکه نرفت چون مستتی نبود امکاناتی که در اختیارش قرار می گرفت زود خرج دیگران میکرد مستطی نمی شد دوستانی که مکه می رفتن می اومدن خدمتشون شنان توضیح سفر حج میداد که آدم باورش نمیشد این حج نرفته باشه تو خدایی که نرفته اینا رو چجوری بلده من چندین از شاگردان این مرد خدا رو دیدم که در ایام حج ایشونا در طواف دیده بودند برگشتن اومدن ایران گفتن آقا شما بودی شما میخندید فقط اونایی که از این دیدگاهی از راه دور نگاه میکنن. حالا و بس خوبان نیستیم خوبان رو دوست داریم حالا بنده که اون حرف برای دهانم زیاده ولی این مقداره میتونم ادعا کنم بگم که یک خلیفت و یک ولی و که قدرت خار خدایی به ازن الله دارد و من میخوام برم محضرش از آدابش رو باید رعایت کنم بنده مردان خدایی رو می چند روزی که در مشهد مشرف بودن موقع خابیدن پا به سمت حرم مامرزا دراز نمی اینا ممکنه برای بعضی کمی سخت بیادی عرفایی یعنی چی؟ نمیگم پا به این سود راز کردن اشکال شرعی داره ما ادب محضر بزرگان را رعایت آیت کردن و وقت انایات خاصی هم در حق اینها میشه. شما اسم مرحوم الله کمپانی رو شنیدید شیخ محمد حسین غروی اصفهانی آیت الله کمپانی که مرحوم استاد مطهری وقتی از ایشون اسم میبرن میفرمایند فیلسوف الفقه ها و فقیه الفلاسفه در زمان خودش نزدیک 50 تا 60 سال قبل فوت کرده اولین فیلسوف حوزه نجف بود و اولین فقیه حوزه نجف همه مراجع بعدی از شاگردای ایشونه مرحوم آیت الله بهجت از افتخاراتش این بود که شاگرد مرحوم آیت کمپانی بود و نوع شاگردای اینجوریشون تربیت کرده استاد بنده میفرمود من بارها تو ایوان امیرالمومنین این وارد ایوان امیرالمومنین که میشید به سمت زری یه در بزرگ وسط داره یه در کوچیک اینوری یه در کوچیک اینور الان از این در کوچیکه بخواید وارد بشید از رو قبرهای کمپانی رد میشید میگه بارها من دیدم که مرحوم کمپانی همین جایی که الان دفنه تو این دره کوچیکه وریدیه به سمت حرم امیرالمومنین کسی که استاد همه اصاتی در حوزه نجف بود آثارش هم معلومه می گفت مثل یک ابایی که رو زمین افتاده باشه اینجوری افتاده بود اینجا رو می بوسید و گریه می کرد طولم می داد. که بعضی ها می اومدن رد بشن می گفتن لگد نکنید استاده بنده می فرمود. من دقت می کردم. وقتی ایشون بلند می شد می اون سنگ خیسه نه یک بار نه دو بار می گه به ایشون عرض شما استاد اساتید و حوزه هستید این کار چیه میکنید فرمود تمام درس خوندن هم یک طرف تمام استاد دیدن هم یک طرف تمام مباحثات هم یک طرف این گدایی در خانه اولیای الهی یک طرف زیارت گدایی در خانه اولیای الهی مسی بهانه کردم و چندان گریستم تا کس نداند که گرفتار کیستم یارب چه چشمه ایست است محبت که من از آن یک جرعه نوشیدم و دریا گریستم بیایید عزیزا شما جوونی قلبتون پاکه فطرتتون سالمه امام رضا به جوان توجه داره امام رؤوف هم هست حالا که میخواید مشرف بشید صادقانه از امام رضا بخواید برای بنده روسیاهی که موسفیدم ولی روسیا هم اینو به از امام رضا آقا گرچه شما در اوجید و در عرش و ما فرشیان بیچاره ایم که آرزوی سیر در عرش رو داریم اما امید به عنایت عرشیان داریم لذا با انایت خودتون دست ما رو بگیرید هم معرفتشو به ما بدید هم آدابشو به ما بفهمونید هم توفیق عمل به این آداب رو به ما بدید یک جرعه از شراب عشق اولیای الهی را به کام ما بریزید که بر مبنای نوشیدن یک جرعه شراب عشق به فرموده خدا و سقا هم رب ربهم شرابا تهورا همه ارزش ها ان الله ایجاد می شود به امید اون که با این رفتن و برگشتن شاهد اون تحول مس وجود به کیمیا و طلا شدن باشید و باشیم ان الله و سلام علیکم و رحمت